بالاخره پنجشنبه به شب برگشتیم آنقدر توی آن دو روز محمد از من دوری کرده بود و مرا ندیده گرفته بود که آجزانه و بیتاب آرزو میکردم به خانه برسم و از همه عجیبتر این بود که با تمام رنجی که میکشیدم کشیدم برای آشتی و تنها شدن با او بینهایت بود کار برعکس شده بود حالا که به من اعتنا نمی بیشتر از مواقعی که نازم را میکشید برای آشتی بیقرار بودم. مسخره بود ولی واقعیت داشت قبلا که او برای آشتی پا میگذاشت و حس میکردم بیقرار است انگار دلم قرص بود. عجل ای که برای آشتی نداشتم هیچ خودم را بیشتر هم لوس میکردم. ولی حالا که هیچ قدمی بر نمیاشت و ندید ام میگرفت حتی دیگر حوصله لجبازی هم نداشتم. تمام فکر و ذکرم رسیدن بود و اینکه چطور توجهش را جلب کنم و سر حرف را باز از احساس اینکه دارم از شر وجود دیگران راحت می شدم و اطمینان از اینکه در تنهایی به هر حال راهی برای نرم کردن دوباره گی دلش پیدا می کنم وجودم از آرامش و شوق پر می شد. آخرین جایی که برای خداحافظی استادیم، جواد و سرعیا برای تشکر از آقا همه را برای نهار فردا دعوت کردند. هرچه آقا و فاطمه خانم تفره رفتند، موفق نشدند از زیر دعوت شانه خالی کنند و به هر حال همه قبول کردند. از همه بیشتر امیر با رضا و رقبت پذیرفت، اما محمد حرفی نزد. وقتی فاطمه خانم اصرار می کرد که ما هم به خانه یه ها جاغا برویم، نفسم داشت بند می آمد که نکند محمد قبول کند. می دانستیم که و محترم خانم همراه پدر و مادرم و علی برای دو روز به کاشان رفتند. برای همین فاطمه خانم به امیر هم اصرار می کرد که او هم بیاید که خدا را شکر محمد قبول نکرد. و من از آنجا که فکر می کردم محمد هم برای اینکه زودتر به خانه برسیم و آشتی کنیم قبول نکرده خوشحال و امیدوار از فاطمه خانوم و آقا رزا خدا کردم و به طرف ماشین خودمان راه افتادم. سورایه و جواد و خسرو هم همراه امیر رفتند. در آخرین لحظه جواد گفت محمد چپ منتظر امیر نباش. خونه ما میمونه، شما هم صبح زود بیای. در حالی که امیر تعارف می کرد اما حس کردم حتما او هم مثل من دلش خوشحال است و از خدا می خواهد که شب همانجا بماند. ولی تمام این شادی و ذوق با حرفی که محمد به امیر زد چنان یک دفعه توی وجودم یخ زد که احساس کردم خون توی رکایم منجمد شد و دوباره دیو خشم و هرس و لج توی وجودم با شدتی چندین برابر بیدار شد. امیر که آمده بود تا هم کلید خانه را بدهد و هم خداحفظی کند گفت و با من که کاری ندارین فردا اونجا میبینم بینمتون. محمد گفت کار داشتم ولی دیگه حالا نه برو. در جواب اصرار امیر که میپرسید حالا کاری چی بود گفت هیچی. اگه تو میرفتی خونه منم شب میرفتم خونه خودمون. فاطمه اینو تنها. امیر به تنه گفت حالا که دارم میرم هیچی. اگه نمیرفتم من بنده پاسبان زن جنبالی نمیشدم. این یک. بعد از اونم. فاطمه خانم آقا رو داره. تو از که زن مردم شدی که من خبر ندارم؟ بالاخره امیر رفت. راه افتادیم در حالی که نمیتوانم حالم رو توصیف کنم. من که برای رسیدن لحظه شماری میکردم حال دلم میخواست یا خودم یا او را از ماشین به بیرون پرد کنم. بعد از آن دو روز جهنمی، این آخرین کارش دیگر غیر قابل گذشت و بخشش بود. با اینکه امیر برادرم بود، حس میکردم با این کار محمد جلوی او له شدم. دلم را کینه ای تلخ گرفت و انگار کسی توی ذهنم خط و نشان کشید. باشه محمد آقا، به هم و از عوض شد. به جای آشتی به فکر این بودم که تلخی این نیش را که به من زده بود به او بچشانم. هر هرس و قصه و قذب داشت خفم می کرد و از قیز بند بند وجودم می لرزید. بالاخره رسیدیم. دیر وقت و نزدیک از آن صبح بود. حوله هم را برداشتم و رفتم توی حمام. زیردوش دوش عشقهایم بی اختیار می ریخت. در حالی که لبم را به دندان میگرم که صددایم درنیایید زار میزدم. خدایا چرا این طور شد؟ نمیدانم چقدر طول کشید تا کمی آرام گرفتم. آب سرد اعصاب مختل شده ام را آرام می کرد و به من آرامش میداد. کمی که بهتر شدم بیرون آمدم روی مبیل دراز کشیده بود از جایش بلند شد و پرسید حوله ی من کجاست؟ همان لحن عصبی و سرد. بدون حرف حوله اش را دادم. وقتی در حمام را بست دوباره اشکایم سراسیر شد. حاضر بودم بمیرم ولی با من اینطور رفتار نکند. با تمام عصبانیت و ناراحتیم مجبورم اعتراف کنم که فقط اگر یک خورده نگاهش مهربان میشد. اگر صدایم میکرد، حاضر بودم به پایش بیفتم. اما محمد این بار با همیشه فرق داشت. آدمی دیگر شده بود. آدمی که نمیشناختمش و میترساندم. یاد حرفش توی جده افتادم. من دارم خسته میشم. پس خسته شده. آره، کاملا پیداست. احساس بیچار و بی پناهی میکردم و راه به جایی نداشتم صدای از آن بلند شد و با همان چشم های اشکالوت به نماز ایستادم و چقدر به خدا التماس کردم که کمکم کند مثل کسی که منتظر یک واقعه بد باشد دلم بد جور شور میزد و احساس وحشت میکردم او که از هممان بیرون آمد مرا از حال خودم درآورد وقتی جلوتر از من به نماز ایستاد با حسرت از پشت سر نگاهش میکردم و خدا خدا میکردم یک خورده آرام شود و اخلاقش مثل همیشه شود ولی وقتی نمازش تمام شد امیدهایم دوباره بر باد رفت بالش خودش را برداشت و بدون کلمهای حرف روی مبیل دراز کشید. این دیگر قابل تحمل نبود آخر مگر چه کار کرده بودم که مستحق این همه مجازات بودم تصمیمم را گرفتم حالا که میخواهد اینطور باشد من هم میشوم مثل خودش به هر زحمتی بود بغض بی‌امانی که گلویم را فشار میداد، توی سینه‌ام خفه کردم اعتنا و پشت به عود راست کشیدم و خدا را شکر از شدت خستگی خیلی زود خوابم بود. با صدای زنگ تلفن بیدار شدم. صبح بود. از حرفهای محمد فهمیدم که امیر است. به ساعت نگاه کردم، نزدیک 9:00 بود. دوباره خودم را به خواب زدم. فکر کردم حالا مجبور می می‌شود برای رفتن صدایم بزند. آن وقت به او میگویم که نمیآیم. غمی سنگین به دلم چنگ میزد. افکارم مقشوش و ذهنم خسته بود و احساس می کردم بدنم خرد و له شده. رفتار محمد همانقدر که مرا را از پا انداخته بود و بیچاره هم می کرد حس انتقام و کینه را توی سینهام شعلهور شعله ور می کرد. همانطور که تشنه توجه دوباره و محبتش بودم کینه خرد شدن قرورم و تحقیر هم مدام به قلبم نیش می زد خانم جون راست می گفت به محبت مردها هیچ اعتباری نیست. یاد خانم جون دوباره اشکم را سرازیر کرد. چقدر دلم برایش تنگ شده بود. اصلا دلم برای آن خانه و آن روزهای پر از آرامش تنگ شده بود. برای حس شیرین نزدیکی خانم جون برای صدای پاهای خستهش و برای حس امنیتی که توی آن خانه و کنار خانم جون داشتم. برگشتن محمد به اتاق مرا از عالم خودم بیرون آورد. هر لحظه منتظر بودم که صدایم بزند، ولی خبری نبود. پشت میز نشسته بود و از صدای ورق خوردن کتاب ها معلوم بود دوباره توی کتابایش قرق شده. باز همین کتاب خوندن های لعنتی. انگار توی این دنیا غیر از خواندن و نوشتن کار دیگری نبود. نه خیر، انتظار فایده نداشت. از جا بلند شدم. حتی سرش را بلند نکرد که نشان بدهد وجود را حس میکند. چیزی توی وجودم میخروشید و بیتابی میکرد. درونم قوقا بود و با زجر میخواستم خون سرد و بیتفاوت باشم. میخواستم یک جوری صدایش را در بیاورم و متعجب بودم که چرا حرفی از رفتن نمیزند. رفتم پایین و تا توانستم صبحان خوردنم را طولانی کردم، بلکه صدایش در بیاید ولی انگار نه انگار هیچ چیز از گلویم پایین نرفت از لچم رفتم بالا و شروع کردم به لباس پوشیدن و آماده شدن و او همانطور بی خیال قرق کتاب ها بود آماده شدم هرچه دور خود گشتم و در و تخت را به هم زدم دیدم فایده ندارد مجبور شدم حرف بزنم داره دیر میشه؟ هیچ نگفت انگار اصلا نمیشنید دوباره گفتم آماده نمیشی باز هم سکوت محمد با تو بودم حتی سرش را بلند نمیکرد طاقت من هم داغ شد اصلا رفتن یا نرفتن برایم مهم نبود فقط تمام حواس هم متوجه رفتار او بود رفتن تنها بهانهی بود برای حرف زدنم ولی از بی او انگار یک دفعه مشاعرم را از دست دادم خدایا نمیدانم من احمق بودم یا مستحق عذاب که عقلم از کار افتاد حسادت همراه حقارت چنان مثل موریان توی جانم افتاده بود که شعورم را از کار انداخته بود برای چند لحظه مثل اینکه واقعا جنون گرفتم و دیوانه شدم. این تقدیر بود یا افکار و اعمال من که با چنین بهانه پوچی سرنوشت زندگیم عوض شد. نمیدانم. فقط این را میدانم که وقتی امیر بعدها با یا ازدواج کرد وقتی محمد را از دست دادم و وقتی از درون همیشه مثل آدم تشنه له لح, لح زنان وجودم محمد را میطلبید تازه آن موقع درست فکر کردم که دیگر خیلی دیر شده بود. آری، آن روز ناگهان عقل از سرم پرید و برای اولین بار با لحنی گستاخ صدایم را بلند کردم و فریاد کشیدم. صداما نمی نمیشنوی؟ سرش را بلند کرد. نیم نگاه نافذ و عصبانیش مثل برق از صورتم گذشت و باز سرش را پایین انداخت و کوتاه و عصبی گفت. ما جایی نمیریم باز با لحنی گزنده و خشمگین داد زدم حتی خودم هم نفهمیدم چرا این حرف را زدم چرا؟ من سرم برم از جایش بلند شد و به طرفم آمد روبرویم ایستاد مجبور شدم سرم را بالا بگیرم تا به توانم توی چشمهایش که با نگاهی مخلوط از خشم و رنج و غم نگاه هم می کرد چشم بدوزم. دیگر نگاهش عاشق نبود، رنگ محبت چشمهایش اگر آشغانه هم بود، آنقدر غمگین بود که دیوانه هم می کرد. من احمق چه کار کردم، چه باید می کردم، اگر سکوت یا صحبت آرام نبود، لاقل پرسش دوباره بود، ولی انگار شیطان توی وجودم زبانه میکشید نمیدانم شاید خواستم همانطور که از بیتوجهی و بیاعتنایش رنج می بردم او هم رنج ببرد شاید میخواستم به من توجه کند یا نمیدانم واقعا نمیدانم چه شد که بزرگترین خطای زندگیم و احمقانه ترین کار ممکن را کردم با صورت روخته دستم را رو به کمرم زدم. و با صدایی که از خشم درگه بود گفتم برای چی نمیدین؟ نکنه برای اینکه که فکر میکنی من دوست دارم خسرو رو ببینم خدایا این کلمات بیمعنی از کجا و چگونه به ذهن من آمد و من به زبان آوردم اصلا این خود من بودم که با آن و آن لحن این حرفهای محمل و احمقانه را به زبان آوردم نمیتونم واقعا نمیدانم که چه شد دیگر حتی مهلت نشد چشمایش را ببینم سیلی محمد چنان سخت و محکم و آنی مثل برق توی صورتم خورد که هیچ چیز ندیدم تنها حس کردم که برق از چشمم پرید اولین و آخرین سیلی بود که در عمرم خوردم در چنان توی وجودم پیچید که ناخداگاه زانو زدم و محمد حتی برنگشت که نگاهم کند. سری لباس پوشید و بیرون رفت. صورتم میسوخت، اما نه مثل قلبم. احساس میکردم خفیف شدم. خار شدم و دیگر هیچ چیز نیستم. از خودم پیش خودم بیشتر احساس خجالت می کردم. یعنی این من بودم؟ این قدر زار و حقیر؟ محمد که اگر یک روز حس می کرد درد دارم انگار خودش درد می کشید و طاقت از دست میداد حالا حتی برنگشت که نگاه هم کند. محمد که وقتی تنها بودم وقتی حس میکرد ممکن است بترسم غیر ممکن بود تنهایم بگذارد حالا رفته بود دیگر برایش هیچ بودم و این از هزارها سیلی برای روحم بدتر بود. صدای های های گریه بی امانم آنقدر بلند بود که تا وقتی در ساختمان را بست حتما صدایم می میشنید ولی برنگشت باور نمی کردم برنگردد ولی برنگشت رفت نه فقط آن روز دقیقاً ده روز ده روزی که مثل ده قرن گذشت انگار توی برزخ یا نه خود جهنم دست و پا زدم و زجر کشیدم و عشق ریختم و به خدا التماس کردم که برش گرداند چقدر دروغ برای مادر و پدرم و امیر سرهم کردم و به چه مصیبتی ظاهرم رو جلوی دیگران حفظ می تا کسی از قوقای درونم سر در نیاورد به چه بدبختی از زیر جواب دادن به سؤالهای مکرر رو امیر شانه خالی کردم و وقتی گفت محمد برای چه یک نفر رفته مشهد در حالی که قلبم هر فروریخت فرو ریخت و شکه شدم از جواب دادن تفره رفتم حالم چنان خراب بود که با تمام تلاش و گوششم در پنهان کردن و وخامت حالم همه متوجه شده بودند که اتفاقی افتاده و من بیچاره و مستاصل فقط خودم را از دید دیگران پنهان می کردم. و از جلوی چشم های کنجکاف آقا جون و مادرم و نگاه های شماتت بار امیر فرار میگردم. چقدر بدبخت بودم و نمیدانستم چه کار باید بکنم. خدایا توی این دنیا زجری دردناکتر از روحی که دارد پاره پاره می شود و نمیتواند تواند دم هست. چنان رنجی از درون می بردم که قابل وصف نیست. دیوان وار قلبم سر به سینه میگفت و من غیر از عشق و ندامت پناهگاهی نداشتم. درد و وحشت وجودم را در خودش قرق می کرد. به عهدی نمیتوانستم توانستم راز دلم را بگویم. رنج میکشیدم و انتظار تا آن روز که